ت الله الرحمنن الرحييمم الحدر الله الين وصللات وسلام على عشرق اللممبيا وبوسيد الموسين عالي و صح الجمعين اما بعد. ما همچنان در بحث فترت هستیم ما گفتیم در بحث فتر ما در بحث لغویش گفتیم که فتر از کجا بر شده از بحث خ قطتون نمین فناان الان 5 تا تعریف گفتیم در بحث فترت که یکی از زوااق کان ها و یا یکی از ساائل هست ورائ، شناخت خداوند یکتا یعنی خداوند یکتا است هنوز بحث ربوبیت نیست هنوز بحث الوهیت نیست هنوز بحث از نیست. هنوز بحث از, از صفات نیست بحث یک راهکار یک وسیله است برای شناخت الله آیا یک وسیله هست یا نیست که خداوند در ذات انسان گذاشته یا نه این بحث اینجا هست. بحث ما در بحث فطرت ایجاد که یک وسیله میشه یا باج... می شود باشد یا نه خب ما اولا ما بحث اینو داشتیم که فطرت در لغت چیه بعد رفتیم بحث فترت آیا در قرآن و سنت اومده به چه معانی اومده و چه جاهای اومده آیا در سنت ثابت هست نیست چند جا در قرآن اومده ادل رو ذکر کردیم بعد علت اختلاف در فترت هم ما گفتیم گفتیم که علت اختلاف در فترت این است که قدریه اومدن به فترت احتجاج کردن بعد اینکه گناهانی که از انسان صادر می شود گناهانی که از انسان صادر می شود زیر قضا و قدر الهی واقع نیست خاص خودش داشت، تحریلات رو داشتیم سر جای خودش بازم اون مباحث اکرار خواهد شد لیکل الان بحث امروز ما معنا و مفهوم اسطلاحی بحث فطرت فطرت در اسطلاح به چه معانی هست ما 5نج تا تعریف بر کلمه فطرت داریم بر اسطلاح اینها همه تعریفات اصطلاحی فطرت هستند. بعض اینها گفتن گفتی اولی که امروز فقط بررسیش خواهیم کرد این اگه فطرت خلقت و جبلت و تبر انسانه اون چیزی که خدا با در تبر انسان گذاشته که انسان میتونه حالا با اون خوبی را از بدی تشخیص بده برا مسائلی که زیر مجموعی مسئله خواهد اومد دومین تعلیقی گفتن فطرت همون بداعت حالا معنی بداعت منظورشون چی هست خواهیم گفت و گفته شده که فطرت به معنی است که انسان با اون میتونه کفر را از ایمان تشخیص بده و گفته شده فطرت میساخه و گفته شده فطرت همون اسلامه الان بحث اول ما با اونم این که فطرت در اصطلاح همون برمیگرده به معنای لغویش به معنای خلق و ایجاد اون چیزی که انسان بر اساس اون خلق شده خلق انسان و طبع انسان بیدیم معنا اولین قول امام ابن الاسیر در نهایقی غریب الحدید چنین میگوید معنى الفطره الوارده في الحديث أن المولود يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين معنى الفطره در در حديث اومده كل ممن مولودا إلا يولد على الفطره معناهش انه مولود رو يك خلق میشه که آماده پذیرای دین فلو ترك عليه الا استمر ملازما لها ولم يفارقها إلى غيرها كي اگر همچنان رها شود بر آن دین ادامه میدهد و گمراه نمیشه یعنی و او را آن را ترک نمیکنه کسانی که این قر را گفتن امام ابن عبدل بره که مفصلا اومده این مسئله را در تمهید شرحش داده و امام سبکی و خطابی و ابن العربی و قرتبی و نوبوی و بیضاوی و دیگران خیلی ها خصوصا از بحث معتزله کتاب هاشون مثل امام زمخشری و دیگران که از متظلم و مفکرین و اقلانی ها هستن که متبنی مذهب قدریه هست متکلمین خود خود خاص, خاص و ناخاصه در این مشکل افتادن چون خودشون متهم میشن با فترت در نتیجه اومدن فترت را از معنی اصلیش خارج بکنن خلاصه حرفای تمامی این علمایی که متبنی این شدن که فترت به معنای طبع است خلاصه حرفشون ما میتونی در این خلاصه ا فطرت است که انسان را از حیوانات جدا می کند خلقتی آگاه انسانی آگاه و یا انسانی بینا انسانی که یک عقل و یک بینشی دارد انسان بینشدار که انسان را از حیوانات جدا بکنه این اولین مسئله ای که در تمامی گفتهای این علماء اومده دومن غیر از بحث خلقت اساسی انسان، خلقت تبعی انسان که با حیوانات فرق میکنه، مسئله دوم این که این انسانی که خلق شده سالمه، نه مؤمنه و نه کافر، انسانی هست پوچ یعنی خالی از هیچ چیز، هیچ شناخت، و هیچ آگاهی و هیچ معرفتی. تمامی این کسانی که ما گفتیم بر این اعتقادانه که انسانی که به دنیا میاد، اگر رهاش بکنی نه کافر و نه مؤمن و نمیتونه راه حق رو را از باطل تشخیص بده، واسه مؤمن نیست. یعنی معنای فطرت شخصی شخصی هست با تبع انسانی که با حیوانات فرق میکنه یکم عقل داره که این عقل و این فطرتش چنینه که کفر را از ایمان نمیتونه تشخیص بده خالی از اینها هست و سومین بحثشون در بحث فطرت و معنی فطرت اینه که که فطرت انسان آمادگی پذیرش دینه همونطور که در گفته امام ابن اسیر ومد Annel mulud yule den على nubh min el-jibilla og tabi al-mutahyye le-gabulle den. Al-mutahyye آماده شده متahyye حيئet ho شيئen او حيئet ho fulhan او حيئet ho kiva یعni آماده ساختم. Mutahyye یعni آماده برای پذیره شدین. خب این آمادگی gij چه نوع آماده هست برای پذیره شدین؟ آیا میتونه تحسست بده خوبی را از بدی یا نه؟ آیا یه چیزهایی که معارفی در ذهن خودش داره یا نه آلا اینها بررسی قایم کرد آلا این خلاصی حرفشون بود حالا به چی استلال کردن برای این گفته شد پس اینها گفته اول گفته خیلی از علماء بر اینی که فطرت در معنی استلالهش برمیگد معنای معنی لغویش و همان تبعه است و اساس خلقت انسان که خالی از ایمان و گفره درسته؟ که آماده پذیرش، دین هست. این خلاصه گفته های تمامی علما در تمام... نکه تمامی. در این گفته ای اول کسانی گفتن خلقت و جبلت و طبع انسان فطرت به معنای خلقت و جبلت و طبع انسان است. استدلال اولشون چینینه؟ به این آیه استدلال کردن گفتن الحمدلله فاطر السماوات والعب آیه, فاطر... آیه یک سوری فاطر الحمدلله فاطر السماوات به اتفاق علمای لغت فاطر در اینجا به چه معناست؟ به معنای خالق همون طور که ما قبلا ذکرش کرده گفتن که اینجا چون فطرت در خود قرآن به معنای خلقت اومده پس فطرت هم در حدیث ما من مولودن یلا یلا فطرت پس فطرت اینجا به معنای اساس خلقت انسانه همون انسانی که چی؟ خلق شده اون طبعش اون اساس خلقتش این هم همون خلقت خداوندی که در انسان گذاشته خب الان ما بیام تحلیل بکنیم این گفته اولا شما هایی که اومدید گفتید بر اساس لغت باید بیام حدیث رو شرح بدیم اولا آیا کلمات شرعی را می شود با تعریف های لغوی یا معانی لغوی تعریف بکنیم؟ ما در بحث ایمان داشتیم ایمان در لغت یک مبنی و مفهوم داشت در اصلاح یک معنی و مفهوم خاص خودش درسته؟ نماز هم همینطور نماز دعاست؟ ما نمیتونیم طبق اساس مفهوم لغویش بیام بگیم نماز دعا خوندن و نیام نه رکوعی انجام بدیم و نه سجودی پس اولا گفتتون که اینکه بر این حدیث را بر اساس لغت تفسیر بکنیم پس این اساس و پایتون اشتباه بوده دوم اگر قراره اگر قراره که ما این آیه را یا این حدیث را ما من مولودن لا یود علی آیاتی که فرق وجهک الدین حنیفه فطرته الله التي فطر الناس علیها اگر ما قراره که این فترتی که در آیه و حدیث اومده به معنای لغوی تفسیرش بکنیم خب چه فرقی هست بین حالا و بدی در اون شخصی که اینجینی تبهی داره یعنی الان بالفرض اگر ما اگر ما بالفرض ما بگیریم بحث فترت به معنای خلقت این آیه را مثلا تحلیلش بکنیم فقیم وجه کل الدین fahl الله التي her الناس عليها. for disgå, for only of factora lurer Nasa og vet ut selvbоп cycleset, men brightsløing av vi i osenakt, du er virkelig vanlig strongholdet, og en godschoolet i den l Differenti, i virkelig bygg Suget, en god наклад av charget blir myelig Santoli? Det er virkelig kian av grannet i Gud ستایش این ای این اشخاصه اگر ما بگیریم فطرت به معنای خلقت آیا فرق بین کافر و مؤمن ابراهیم و علیه السلام و دیگر پیانبران میکنه یا نمیکنه فرقی میشه اگر ما اینچینین معنا بکنیم هیچ فرقی نمیشه ولی فرقی بین ابراهیم علیه السلام که این اینچینین وصف دیانتش هست دین ابراهیمی که حنیف هست خدا مدح و ستایش بیکند. این چینین باشه این محمد و این اموت محمد چینین باشید فترت خدا بند. فترت الله اللہ اللہی فتر ناس علیه. پس بحث بحث ستایش مدح. پس اگر مدح باشه غیر ممکنه که این فترت به معنای خلقت باشه. درست یا نه؟ پس این دوتا در در اینکه گفتن فترت به معنای لغبیشه. غیر ممکنه که معنای لغبیش بیاد. دو من استدلال دومشون چینینه؟ بین آیة صدق کلام والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا آیه النحل والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا خداوند شما الله شما را از شکم اون مادر کرد و چیزی نمیدونست گفتن که غیر که عقل انسان بپذیره فرزندی که به دنیا بیاید بتونه تشخیص بده که این کفر هست و این ایمان در این آیا و الله من بدون امهاتی کن خداون شما ها از شکم های از رحمه مادرتون بیرون آورد در حالی که شما چیزی نمی دانستی درسته؟ لا تعلمونه چه میگن انسانی که به دنیا میاد غیر ممکنه که بین کفر و ایمان تشخیص بده خب چون انسانی که به دنیا میاد هیچ چیزی از دنیا نمیدونه پس غیر ممکن است که کفر رو از ایمان تشخیص بده جواب ما پاسخ ما چه جواب بر اینها بدیم اینها میگن اساس خلقت انسان چین اینه انسانی که به دنیا میاد خلقش جبلش اینه به دنیا میاد نمیدونه کفر چیه نمیدونه علمی نداره جواب ما اولا این آیه دلیل بر این میده است اولاً جواب ما، پاسخ ما بر اینها اولاً این آیه دلالته بر این داره که فرزندی که به دنیا می آید یک قدرت و یک تمکن و ارادتی برای اسلام، برای پذیرش اسلام دارد به طوری که اگر این شخص رها بشه فقط دین اسلام را می پذیره طبق این آیه و طبق علا حدیثی که تحلیلش خواهد اومد خدا در این آیه چ میخواد بگوید والله خراد مدونون اونمهادلا تعلمونهشه یا میخواد چین بگوید که ما شما را طلقت کردیم و شما این بدی را نمیدونستید. ما اومدیم یادتون دادیم بر اساس آن چیزی که در ففرت شما گذاشتیم پس اولا این آ دلیل بر اینه که فرزنددی که به دنیا میآید یک قدرت و یک اراتی خداون در او گذاشته که می با آن اسلام را تشخیص بده. دو بام کسی که چیزی نمی داند. کسی که چیزی نمیداند. غیر ممکن است که کف را از ایمان تشخیص بده. این چین گفتن اون کسی که چیزی نمیاند فرزدی که به دنیا می آید غیر ممکن است که کفر را از ایمان تشخیص بده چون چیزی نمی داه. ما میگیم گفتتون صحیح در چه موقع یا در چه جاهایی؟ گفتتتون صحیح است در جایی که اون علم اکتسابی باشه اون علم اکتسابی باشه مثلا به فرض فرز فرزندی که به دنیا می آید میتواند بداند قران چی است سنت چی است حدیث صحیح و ضعیف چی است نوع علمایی هستند البته راوت قران علم قرائات علم تجوید علم نبوی رحم احکام طهارت و نماز و چه علمایی هستند علم اکتسابی لیکن در اون شناخت و معرفتی که انسان در خودش گذاشته آیا اینم شامل میشه اون علمی که خارج از این مسئله هست یعنی خارج از بحث علم اتصابی هست مثلا ما در بحث گناه داریم الافم ما حکف النفس با کرهتن یطلع علیه ناس گناه این چیزی هست که انسان در نفس خودش احساس بدی بکند زشتی بکند که جلو مردم اظهارش بکنه. آیا این احساس؟ این درک و شعوری که در ما هست اکتسابی هست یا اینکه خداوند در نفس انسان گذاشته این اینجینی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله کی بیان میکنن اکتسابی هست یا در نهادینه انسان هست در نهاد انسان در نهاد انسان هست به خاطر همین میگه که رسول الله صلی الله علیه و گناه اون چیزی هست که طبعا تو میدونی که بده و دوستا دارن مردم تو رو بگیرن یعنی میرسارد ما اشخاص مؤمن رو بگیم نگیم بهش مشروب حرامه نگیم بهش آیا روش میشه یک شخص مومن بیاد مشروب در جمع بخوره؟ نمیتونه. زشته. یعنی زشت, زشت بیفنداره. پس فرق اولا بین علم اقتصابی و علم معرفی که در سومین بند این مسئله ما میتونیم این رو از هم جدا بکنیم. در ثبوتی رد مرگ اینه که بین علم حالا اونجا که بحث علم اقتصابی بود و علمی که خدا من در نفس انسان گذاشته سوم من این که بین علم و بین معرفت و شناخت فرق است بین علم و شناخت و معرفت فرق است. معرفت معمولا در قلب انسانه که به درک انسان برمی گرده. و ضد این معرفت انکاره ولی ضد علم جهله ندانم کاریست انسان یه چیزی را انجام بده با ندانم کاریش ندونستنه بدی اون چیزش ولی که ذت معرفت الکله یعنی انسان یه چیزی با طبعش جور در داره میاد بسپر مثلا بهتون میگم تیزی خوشتون نمیاد درست درسه درک شما شعوره یعنی شما این چیز را نمیپذیره این بهش میگن درک و شعور و معرفت لازم نیست که نسبت به اون چیز علم داشته باشه که این تیزی هست و در نتیجه نمیگم زبانتون و فلان و فلان میسونه برمیگرده چی به شناخت فطری شما چهارم اونهایی که گفتن انسان بر اساس اسلام خلقت میشه و بر اساس معرفت حرفشون اینچینی نیست که انسان یعنی مایی که مثلا بالفرض میگیم انسانی که به دنیا میاد اساس و نهادینش اسلام هست منظور ما این نیست که اون شخصی که به دنیا میاد میتواند وحی را از غیر وحی تشخیص بده بلکه ما منظور ما این است که فطرت انسان لازمه این هست که اسلام را بتونه بپذیره. نه اینکه شخص کاملا مسلمان است و میتواند نماز بخواند. نه ما وقتی که میگیم حالا میاد چرا ما میگیم فطرت اسلامه؟ ما معنای این که انسان فطرتن مسلمان هست معنای این حرف ما نیست که همه چیز از اسلام رو میدونه ما منظور ما من اینه که انسانی که به دنیا می اساسش اینه که مشرک نیست خداشناس هست در ذات خودش شنا خداشناس است این اساسی که الان ما میخوام اینجا شرح و توضیحش بدیم و به این نتیجه برسیم و خواهیم رسید پنجمان و, و آخری رد بر اینها در استدلالشون به این آیه در نفی علم اینجا که این علم اکتسابی هست این است که کفار و مشرکین خداوند هم بازم در قرآن ازشون این چنین علمی را نف کرده و گفته مثلا مشرکین علم ندارن زیاده در قرآن مثل این آیه اول لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اول لو كان اباؤهم فذرانشون بحث مشركين اني كي ايمان نميارن كي ميگفتن كي كي بيدقينهم تتبع ما انزل قالوا بل نتبع ما 2000 عليه ابانا مطهران پدرانمان هستيم خب اينها يگفتن ما پدران پدرانمان هستيم خداوند چنين بهشون ميگيت اول لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا يعني اي غير از ايني كي پدرانشون چيزي نميدونستان و هدایت نمی شده. چیزی نمی دونسته. نفی این علم چی نوع علمی هست اینجا مشرکین اینجا مشرکین و با اون اطفال مشترکه چی نوع علمی نفی شده در اینجا علم اقتصابی شرعی چون اونها حرفه ها داشتن اونها نمی نجاری کردن می کردن و فلان می و فلان می کردن درسته پس اگر قرار باشه پس اگر قرار باشه نفی این علمی که والله اخرجکم من بطونهم مات من ماتکم لا تعلمون شيئا اگر نفی این علم نفی علم فطری بود پس اینجا مشرکین هم همین طور مثل اونها هستن نفی این علم علم اصلا کاملا فطری هست و در نتیجه اون اونها اصلا مؤاخذه نمیکنن و هیچ هیچ وقت خداوند اینجوری سرزنش نمیکرد چون این آیات در چه وجهی اومده در بچه سرده نشه مشرکین. پس اگر قرار بود نفی این علم که شما میگید نفی علم مطلقا نفی علم فطری هست فرقم نمیدید بین علم فطری و علم شرعی پس لازمش این هست که چی؟ مشریکین هم با اون بچه ها با اون نوزات که دنیا میان یکسان باشن و در نتیجه خداون نباید این چیلی منامتشون میزد. الان فکر کنم نمیدید. دست و فا یک جوری یعنی و که in muddat zamani ke hala sayaram ke al-qalb adili asli ro mukta parche islam hala jo karala to asli jini ما ادله را گفتیم از قرآن و سنت برای اینکه فترت هست و گفتیم مستقیم و غیر مستقیم در قرآن به اشاره شده و گفتیم که فترت همون میساقی هست که خداوند گفته و این گفته اهل سنت واید خد بکن من علمت ظهور ذريه و اشهدهم على انفسهم لا تسبر ربكم این میثاقی هست که من گرفته و احادیث را گفتیم ما اعتقادoverline این در جمع بین احادیث و که چی قبلن ادلهش ذکر شد که فطرت اسلامه لیکن باز شبهاتی که ذکرها شد اعتراضاتی که بر قوله 4 و 5 خواهد شد بعدم دوباره تکرار خواهد شد لیکن ما اون اساسو قبلا گذراندیم الان عرفت و شر و لا شر دیگه الان اینجا این ما این اساسو گذاشتیم که ما الان شر رو بدونیم بطلان شر رو که دونستیم میتونیم بفهمیم که چه قولی درست هست یعنی ما به این اساس رفتیم هرچند که ما قبلا یک مرور کلی و مرور عامی داشتیم که این چنین تصوری ما داریم روی فطرت درس هایی گذشته هست آقا چون عهد عهد من خیلی دور هست و چندین ماه گذشته چهار پمی ماه گذشته از از فاصله بین ما و آخری این درسی که ما داشتیم در بحث به خاطر همین تمرکز خیلی زحمته یعنی بین درس هایی که قبلا بیان شده و این درسی که الان ما داریم میگیم خب الان باز دوباره یک مرور کلی خواهیم کرد بر استدلال دوم میشون استدلال دوم میشون که کاملا مفصل امام ابن عبدل در بحث در کتاب تمهیدش آورده پس گفتیم آیه اولی که بهش استدلال میکنن فرموده خداوند الحمدلله الذی فقدر الحمد السموات و که ردشون دادیم گفتیم اینا فطرت معنای لغوی بر اساس این آیه تفسیرش کردن گفتیم درست نیست کلمات شرعی باید مفاهیم شرعی داشته باشن یعنی بر اساس احادیث و ادله دیگر توضیح داده بیشم مثل بحث نماز و ایمانی که خبلا داشیم. دوباره من گفتیم که اگر قرار باشه که فترت به معنای لغوی بگیریم پس در آیات قرآن فترت ممدوح نیست. فترت یک چیز نیکی نیست. چون ما در قرآن اینچینین میدونیم و اینچینین میبینیم که خداوند به نیکی از فطرت یاد میکند با مدح و خوبی. اعت موج این حنی را فرات الله التي فرا الناسله. این رد شووه هی اولشون شووه هی دومشون اینه که انسانی که به دنیا میاد والله اخراجکن به مطون اونمهاتکن لاعلمونهشه یا گفتن که انسانی که به دنیا میاد چیزی نمیدونه در نتیجه غیر ممکنه کسی که چیزی نمیدونه مکلف باشه و غیر ممکنه این چینی شخصی که به دنیا میاد علمی نداره تشیص بده خوبی را از بدی. ما ردششون داریمیم مهمترین رد ما اینه که ما باید اینجا نفی علم نه نفی شناختی که اساس اساس بحث من هست در فتره است. شناخت الله یک تا پرسی این اساس ما داریم بحثش میکنیم این فرق بین این مسئله هست و بین بین اون چیزی که شما دارید میگید علم اکتسابی در اینجا علمی نفی شده که اون علم اکتسابی هست همونطور که ما گفتیم خداوند اینچینین علم را از مشرکی نفی میکنه اولو کان آباهم لا یعلمون که آیه 104 سوره ماهده هست، آیه 104 سوره ماهده که غیر از اینه که پدرانش رو چیزی نمیدونستن پس نفی این علم، نفی علم است یعنی فرزندی که به دنیا میاد دنبال دین اسلامیات درفتن نمازیست و چیزی از نماز روزه نمیدونه لی که آیا دلیل بر این هست که اصلا شناخت الله ندارد چطور هست که اون مثلا فرزندی که به دنیا میاد شیرخار دنبال سینه مادرش میگر و شیر میخوره یعنی این چنین فطری در ذات نهادینش است اگر شما میگید خوبی رو از بدی تشخیص نمیده و هیچ تشخیصی نداره هیچ علمی نداره پس چطوره که وقتی که دستتون رو میذارید جلوی لب دوزادی که تازه از شکر مادرش در اومده چطور پس اون فرزند دهانش رو تکم میده و می نکه یعنی جالبی قدرت خداوند در اینه که فرزند با اون شیوه ای که خداوند بهش داده قشنگ مثلا زبونش زیر سینه مادر میگذاره که قشنگ شیر را به مکه خب چه قدرتی چی چه چیز تشخیص بهش داده یک تشخیصی داره یا نداره ما بحث ما در اینه شما میگید در تشخیص داره خالی هست اگر خالی از تشخیص هست پس چطور ادرار میکند پس چطور مفهوم میکند پس چطور میدونم شیر را میبکنه همون نقطه‌ای که به دنیا میاد چطور میته میته تشخیص بده خواب رو از ویدادی در تشخیص بده خیلی چیزها هست بس اساس تشخیص هست در اون فرزند اینا میگن نه اصلا خالی هست خالی از تشخیصه ما میگیم نه اصلا حرفتون اشتباست و اینم ادله در رد اینها سه بومین اصدرالشون به این آیات هست انما توجزون ما کنتوم تعملون انما توجزون ما کنتوم تعملون آیه 7 سوره تحریم و همچنین آیه متسر 38 کل و نفس به ما کسبت رهینه کل و نفس به ما کسبت رهینه اینا گفتن میگن کسی که فرصت انجام یک عمل را نداشته باشه، غیر ممکنه که مرہون به عملش باشه. به خاطر همین خداوند میگه اما کننا معذبین حتا نبعث رسولا ای 15 آیه 15 سوره اسراء آیه 15 سوره اسراء و ما کننا معذبین حتا نبعث رسولا انسانی که فرصت عملی نداشته باشه، پیامبری هم بهش دیاد، اون شخص غیر ممکنه که مورد محاسبه قرار و همچین این استدلال ها به اجماع بر اینکه که قصاص و قصاص گرفتن از یک فرزندی که مثلا برفت جنایتی مرتقب شده باشه قصاص ازش ده بیشه چون چیزی نمیدونه یعنی فرزندی جنایتی مرتقب بشه مثلا تو فنگی بذاره در سینه پدرش پدرشو بکشه گفتن که این قصاص و قود ازش ده میشه. الان این استدلال های این ها و خواهیم اومد اعتراضات ما خودمون چرا این چنین استدلال هایی دارن به این آیات و چنین استدلال میکنن؟ به اینکه انسانی که فرصت عمر ندارد غیر ممکنه که مورد محاسب قرار بگیره این اعتراضات اینها و این شبهات اینها مبنی بر اینه که اینها نتونستن مثل مسئله قبلی بین ایمان فطری شناخت فطری و بین اون چیزی که انسانی که اون ایمانی که انسان کسب میکنه با عقل و حواس خودش درک میکنه از پیامبران یاد میگیره نتونسن بین این دو تا فرق بدن پس علت اصلی انحراف اینها در چی هست شناخت فطری و شناخت اکتسابی علم معرفت معرف علم اکتسابی است علمی که از طرف خداوند میاد انسان کسب میکنه با شنیدن و دیدن شناخت فطری هست در اساس نفس انسان خود گذاشته شناخت گفتیم مثال هم داریم به اون تفل شیر خار امام خطابی چنین میگید در استدلال اینها به این آیات لا لل ایمان الفطری فی احکام الدنیا در رد اون مسئله قصاص میگید لا لل ایمان الفطری فی احکام الدنیا ایمان فطری هیچ وقت اعتباری در قصاص و احکام الدنیای ندارد جز احکام اخری است. فرق باید بینید احکام دنیا و احکام, احکام آخرت <تصفيق> میگن اعتراضشون بر ما اینه شما اهل سنت و شمایی که دای عقیده سلف دارید اگر قرار ایمان انسان فطری باشه پس بچهی که بچه ای که هشت ساله هفت ساله هست انسان این را کشت پس این بچه باید قصاص گرفته بشه بر اساس قول شما و به اجماع هم قصاص گرفته نمیشه چون چرا علم آگاهی ندارد مکلف نیست درسته ما اعتراضمون در اینها اینه که شما قاطی کردید قاط زدید اولا قاط زدید بین علم علم اکتسابی با علم فطری اولا بین این دوتا دو تا قاط زدید دوم شما بین احکام دنیا که بر اساس علم اکتسابی هست و بین احکام آخرت دارید قاطی میکنید احکام این بر اساس علم اقتصابی انسان یعنی علم که انسان کس میکنه مثل حلال و حرام انسانی که دونست یک چیزی حرام است عمدن اون کار حرام رو انجام بده باید منتظر این باشه که در روز قیامت خدا من گردنش را بگیره چون با علم اومده اون علم را زیر پا گذاشته اومده عمدن علم را زیر پا گذاشته میدونسته پس باید این شخص مآخذه بشه بر اساس تکلیفش بر اساس اون علمی که کسیف کرده ولی هیچ وقت علم فطری اساس, اساس مثلا بلفرز یک شخصی نمیدونه بلفرز یک شخصی در جایی که مثلا هیچ علمی نیست در یک صحرا و یک جنگلی هست علمی بهش نرسیده آیا امکان داره خداوند او را محافظه بکنه بر اساس علم فطری که بهش داده خیر این آیاتی که شما استدار کرد رد بر علیه شماست نه, نه به نفع آیه دلیل بر اینه ما كنا معذبين حتى بعثنا رسول او دلیل بر اینه که اگر علم شرعی نماد علم ما احنا نماد ما اون اشخاص وسط پیامبران اون اشخاص رو مؤاخذه نمیکونیم بر اساس گمراهیشون علم فطری داره دیگه علم فطری داره اساس نهادینه اسلامی و یک انسان مؤمن اون اساس اون شخص مؤمن رو داره لیکن این بدون اون علم اکتسابی نمیتونه راه نجات رو بهش بده گفت امام خطابی در معالم معالم السنن در شرح این نه لا عبره للايمان الفطري في احكام الدنيا وانما يعتبر الايمان المكتسب بالاراده والفعل المكتسب بالاراده والفعل در چیزی که اعتبار داره علم شرعی هست که با اراده و انسان کسب بله خلاصه حرف ما در این اعتراض ما بر این اصطلاالشون این است که فرزندانی که به دنیا میآیند بر اساس فطرتن نه اینکه آنها مکلفن بلکه خداوند این فطرت رو در آنها گذاشته تا اینکه بتونن کفر را از ایمان تشخیص بدن نه اینکه مؤمن هستند شناختی هست یک تاپرسی هست در ذات آنها که گذاشته خداوند که بتونن حق را از با حق تشخیص بدن نه اینکه ذاتاً انسانی هستن که تمامی احکام شرعی را بدون وحی و بدون پیانبران بتونن بدون قرآن و سنتی بتونن به آن پی ببرند ببرن بهش رویده بکنن. خب اسلال آخر خیلی مهمه خیلی طولانی هست. مادامی که امروز این چینین دهان باز نشستی و دست از قلم گرفتید و نشستید انشالله ادامه بحث به هفته آینده باگذار بیکنیم. چون بحث خیلی مفصل باز مروری دوباره بکنید بر مطالبی که خوندید تا اینکه که یکم یک آمادگی بیشتر داشته باشید خصوصا اعتراض بعدی که مفصل است و نیاز به شرخ و توزیر بیشتر و پیچده تر است از این سه تا مسئلهی که ما گفتیم. پس سه تا استعدال داشتن بر سه تا استعدال رد داریم مرور بکنید و فکر بکنید درش چه ردی داریم چی خواستیم بگیم اونها؟ اون چیزی که محور بحث امروزمون بود، محور بحث امروزمون فرق بین علم اکتصابی و علم فطری و بین مسائل لغوی و مسائل شرعی و بحث علم شرعی که اساسش وحی و پیانبران و علم های تجربی که علم وقتی که در قرآن و سنت بحثش میشه و نفیش میشه انتفاش مقصد علم اکتصابی شرعی است که تبسط پیانبران اومده و عدل را هم گفتیم. این خلاصه بحث محور صحبت امروزمون. در بحث فطرت و کسانی که گفتن فطرت خلقت و جبلت انسان و طبعی که انسان داره طبع انسانی که بر خلاف تمامی حیوانات هست. یک طبعی یک طبعی که انسان داره بدون تشخیص خالی از هیچ نوع تشخیص. والا ان بحث حدیثی و بحث رد و ردود دیگری که هست ان در هفته آینده سبحان الله والحمد لله سبحان الله رب العرش الله علی محمد و